فصل ششم. اکنون به ششمین و آخرین افسانه با عنوان بقال و مرد غریب توجه بفرمایید. سالها پیش در روزگاران قدیم در ولایتی دور بقال مهربان و مردمداری زندگی می کرد روزی مرد غریبی به مغازه او آمد و بعد از سلام و عوال پرسی نشانی جایی را از او پرسید بقال هم با روی خوش او را راهنمایی کرد مرد غریب بعد از اینکه از بقال تشکر کرد کیسه پولی را از جیب درآورد جلوی بقال گذاشت و گفت راز از این پرسش شناخت تو بود من غریبم و برای کاری به این شهر اومدم و اونطور که باید و شاید کسی رو اینجا نمیشناسم. این کیسه پول پیش تو باشه، گاه و بیگاه میام و چند سکه از اون رو میگیرم. مرد مقال که جز انجام کار خیر و برداشتن باری از دوش مردم فکر دیگری در سر نداشت گفت اشکالی نداره بذار اینجا. بعد جلوی روی مرد کیسه پول را در صندوقی گذاشت و رسیدی هم به مرد داد. مرد غریب رفت. و یکی دو روز دیگر دوباره سرکردهش پیدا شد اما این بار برای گرفتن پول نبود بلکه کمی نشست و با بقال گرم گفته او شد خلاصه ساعتی که گذشت بقال و مرد غریب کلی با هم آشنا شدند در این میان یک دفعه مرد غریب گفت هیچ میدونی که بهترین حافظ مال و دارایی آدم بعد از خودش قفله. من از همون روز اولی که به اینجا اومدم با دیدن قفلی که به در صندوق تو بود. تصمیم گرفتم که یکی مثل این گفت تهیه کنم آخو منم مثل تو صندوق دارم که لازم یه قفل درست و حسابی او بزنم در قال پاکدل که از همه هنجا بیخبر بود نشانی استاد گفتسازی که گفت را برای ساخته بود به مرد غریب داد و او هم بلافاصله فاصله خدافزی کرد و رفت دو سه روزی از آن واقعه گذشته بود که بقال در صندوقش را باز کرد تا پولی بردارد که دید ای دل وافل از دو کیسه پول خودش و یک کیسه پول امانتی مرد غریب خبری نیست از جا بلند شد و اطرافش را به دقت نگاه کرد هیچ اثری از دزد و دزدی ندید نه در دکانش شکسته بود و نه نقبی به دکان زده بودند از این گذشته قفل صندوق هم نشکسته بود بقال بلافاصله شاکر صدا زد و از او پرسید روزان چطور در دکان رو باز میکنی و شبها چطور میبندی؟ شاگردش گفت صبحا تکهای در دکان را یکی یکی بر میدارم و میبرم میگذارم نزدیک مسجدی که آن طرف خیابان است و شبها هم دوباره میروم و درها رو میآورم. بعد بقال دکان را به شاگردش سپرد و به سرعت به طرف دکان استاد گفتساز رفت. بعد از پرسجو فهمید که آن مرد مریب زرنگی خاصی، استاد ساز را گول زده و کلید صندوق او را به دست آورده و بعدم احتمالا وقتی که او در دکان نبوده به آنجا آمده و صندوق را باز کرده است این فکرها مرد بقال را آزار می‌داد تا اینکه یک روز ناگهان در حالی که از کار خیر پشیمان شده بود دکانش را به شاگردش سپرد و راه افتاد به دنبال مرد غریب وقال روز اول نتوانست مرد غریب را پیدا کند روز دوم و سوم و چهارم هم به همین ترتیب گذشت و او همه جای شهر را زیر پا گذاشت اما اثری از مرد غریب نبود که نبود وقال بیچاره که آن مقدار پول تمام پسانداز و دارایش بود و آنها را با خون دل و کار درست به دست آورده بود نمیتوانست از خیر آنها بگذرد. و قسم خورده بود که هر طور شده باید آنها را پیدا کند به همه مأموران حکومتی هم نشانی مرد غریب را داده بود که اگر او را دیدند دستگیر کنند و پول او را برگرداند بقال بیچاره یک ماه همینطور دوروبر شهر میگشت اما هرچه میگشت کمتر مییافت دیگر از اینکه دکان را به شاگردش بسپارد و دوروبر شهر را با پای پیاده بگردد خسته شده بود نمیدانست چکار باید بکنند. بالاخره دید چاره ای نیست و باید از خیر آن پولها بگذرد تا ببیند خدا چه میخواد. بعد به دکانش آمد و کار و زندگیش را مثل سابق ادامه داد. یک روز ناگهان و با کمال تعجب دید که آن مرد غریب دارد از آن طرف خیابان آرام و آهسته به طرف می میآید اول خواست به سرعت برود یقه مرد غریب را بچسبد و مأموران حکومتی را صدا کند. اما وقتی دید مرد آرام و با چهرهای خندان و مهربان دارد به طرف او میآید خودش را کنترل کرد تا ببیند چه پیش میآید مرد غریب وارد دکان شد و بعد از سلام و پرسی با مرد بقال روی او را بوسید و در مقابلش نشست قبل از هر چیز پرسید چی شده دوست عزیز چنینقدر نگران و آشفته ای بقال که دیگر نمی توانست خودش را کنترل کند گفت یعنی جنوالی نمیدونی من برای چی آشفته اما روزگارم سیاه شده مرد غریب گفت اگه میدونستم که نمی پرسیدم بقال گفت تو اول بگو برای چی به اینجا اومدی؟ مرد غریب در مقابل چشمان ایرتزده بقال سفی ای پول از خوردنش بیرون آورد و گذاشت در مقابل او و گفت من اومدم اینا را تحویل حضرت علی بدم بقال که چشمانش گرد شده بود با هیجان و استراب فراوان کیسه ها را چنگ زد و با پرخاشگری گفت اینا پهلوی ای تو چه میکنن منده گفت یه شب اومده بودم به تو سر بزنم شاگرد دکان را رها کرده بود و با جمعونای سر خیابون مشغول صحبت و گپ زدن بود ناگهان دینم یه دوست سر وقت صندوق مغازه رفته و در اونو باز میکنه. تا اومدم به خودم به دزد دوست کیسه ها رو برداشت و فرار کرد. من هم به دنبالش را افتادم. هر جا رفت تقیبش کردم. سوار ای شد و از شهر بیرون رفت. باز هم به دنبالش رفتم. سوار کشتی شد و از دریا هم گذشت. اونقدر به دنبالش رفتم تا تونستم یه جای خلوت گریبانش رو بگیرم نمیتونستم به زور کیسه پولا را ازش بگیرم مجبور بودم کاری کنم که پشیمون بشه و خودش با دست خودش پولا را تحویل بده همینطورم هم شد توی یک کاروانسرای بین را کنارش نشستم و درست در لحظهی که فهمیدم کاملا از کرده خودش پشیمونه با مهرمونی کیسه را ازش گرفتم و آوردم میدونستم داری عذاب میکشی و برای پولای گم شدت خواب و خوراک نداری اما انسان دیگه. زمانی کاری میکنه زمانی دیگه از اون کار پشمون میشه همین دیگه چه میشه کرد؟ مرد بقال که رنگ برونه نداشت و واقعا نمیدانست چیکار باید بکند پیشانی مرد غریب را بوسید و از او اوشخا خواست. حتی به او گفت که منو ببخش به خودت چک کرده بودم و روزا به دنبالت میگشتم تا به معموران حکومتی تحویلت بدم. مرد غریب گفت همین حالا میتونی این کار را بکنی. هر دو خندیدند. مرد بقال از مرد غریب بسیار پذیرایی کرد و کیسه پولش را به او برگرداند. مرد غریب دوباره کیسه را به مرد بقال داد و گفت که دیگر نمی نمیخواهد و به او اجازه میدهد که آن را صرف امور خیریه کند. وقتی موقع خداحافظی فرا رسید، مرد بقال که از چیزی رنج می برد، برای راحت کردن خودش پرسید: مرد غریب، فقط به من بگو که اون دوز چه ای داشت. میخوام بعد از این مواظب باشم که بازم به سر وقتم نیاد. مرد غریب سرش را پایین انداخت و کمی فکر کرد. آنگاه سرش را بالا گرفت و در حالی که چشمانش را بسته بود گفت فقط همین را بدون که غیافش با غیافه من مو نمیزد. و من واقعا نمیدونم این کسی که پیش تو ایستاده اونه یا من ولی بدون که من دیگه وجود نداره و هرچی از اونه مرد بقال از آنجا که با خدا بود و به معنویات علاقه داشت با شنیدن این سخنان بیهوش شد وقتی به اوش آمد مرد غریب رفته بود و او را با سه کیسه پول تنها گذاشته بود و گال احساس کرد که دیگر با آن کیسه ها علاقه ای نداره